نام خداوند بزرگ کجا بود و باشد همیشه بجا؟ من این پانزدهمین دهمین روایت خود از شاه نامی عبرمرد عدب ادب و فرهنگ ایران فردوسی را به دکتر محمد علی اسلامی ندوشن پیشکش می کنم که بسیاری از سالهای زندگی پربارش را خرج خدمت به فرهنگ و عدب ایران کرد دکتر محمد علی اسلامی ندوشند در یکی از آخرین کوشش های خود در راستای خدمتگذاری به ایران و ایرانی نامه هستی را بنیان گذاشت و فکر برپایه ایران سرای فردوسی را با ایرانیان در میان هاد برسد آن روزی که این سرای عدب و افتخار به نام فردوسی بزرگ در ایران آزاد و سربلند ما برپا شود هموطن شما سعید قائم مقامی در چهارده روایت پیشین از دور دست تاریخ باستانی ایران به هشت پادشاه پیشدادی جیومرس، هوشنگ تحمورس، جمشید، فریدون، منوچهر، نوزر و زوتهماست گفتیم. بانگاه به پادشاهی کیانیان و روزگار کیقوباد و پسرش کیکاووس رسیدیم. در روزگار کاووس از جنگ های او در آغاز دوران پادشاهیش سخن رفت. از سفرش به آسمان گفتیم. از ستیز درناک رستم و پسرش سهراب شنیدیم. آنگاه به روزگاری رسیدیم که سیاوش شاهزاده نگونبخت چشم به جهان گشود. شاهزاده‌ای که کودکی و نوجوانی را در دامان رستم و در کنار زال در زابلستان گذراند و چون به مردی و دلاوری رسید دلش هوای دیدار پدر کرد و به همراه رستم به پاکس آمد شنیدیم در پای تخت ایران و در شبستان و حرم سرای کاخ پدر به دام زن مکار و احری منصفتی به نام سودابه گرفتار آمد که رهاورد پدرش از جنگ هاماوران سودابه نامادری او سخت شیفته و آشق سیاوش خوب چهره شد و چون سیاوش به عشق گناه او پاسخ نداد و به پدرخیانت نورزید سودابه به وی تخمت زد که قصد کامجوی از او را داشته است کیکاووس سوست اراده که سخت شیفته همسر خیانتکار خیش سودابه بود از پسر خواست برای اثبات بیگناهیش از میان آتش بگذرد که سیاوش بی ترس و با چنین کرد و آتش به او آسیبی نرساند. که کاووس خشب چنان می نماید که می‌خواهد سودا سودابه را به دار آویزد و سیاوش که از نهاد پدر آگاه است پادر میانی کرده خواستار بخشش سودابه می شود و کیکاووس همسر گناهکارش را می بخشد اما سودابه بیکار نمی نشیند بد بعد سیاوش را می گوید تا کیکاووس بار دیگر کینه پسر را به دل می گیرد. چنین هنگامهای بار دیگر تورانیان به مرزهای ایران تاخته شهرهایی را تسخیر میکند سیاوش برای رهایی از چنگ سودابه و خشم پدر به همراه رستم به جنگ تورانیان میرود اما افراسیاب که به کابوس دیده است کشتن سیاوش سبب برباد رفتن دودمان او خواهد شد با سیاوش از در آشتی در آمده تن از نزدیکان خود را نزد به گروگان می گذارد. سیاوش با فرستادن رستم به پای تخت ایران شادمانه به پدر آگهی می‌دهد که افراسیاب و تورانیان از در تسلیم و آشتی در آمده. اما که کاووس کینجو دست آشتیان ها را پس زده، رستم را سرزنش کرده، فرماندهی سپاهیان ایران را از پسرش گرفته به توس می سپارد و سیاوش می خواهد که هرچی زودتر گروگانهای افراسیاب را به نزد او بفرستد تا سر از تنشان جدا کند اما سیاوش از پیمان شکنی و تسلیم گروگانها به پدر خودداری می کند و از افراسیاب میخواهد که بگذارد او از خاک توران گذشته گوشه انزوایی برای خود پیدا کند پیران پخلوان و مشاور خردمند و بزرگوار افراسیاب به او پیشنهاد می کند که سیاوش را همچون پسر خیش بداند او را به توران بخواند. دخترش را به همسری او درآورد و ایرانیان را وامدار بزرگ خود کند افراسیاب میپذیرد و پیران را با خدایای فراوان و پیامی خوشایند به نزد سیاوش میفرستد سیاوش با های پیران آرام میگیرد و با عشق و درد و دریق خاک ایران را ترک گفته و همراه پیران به سوی تنگ و به نزد افراسیاب حرکت میکند چونین تا رسیدند به پشت کند که آن بود خرم سراغ درنگ پیاده به کوی آمد افراسیان از ایمان میان بسته و پرشت ها سیاوش چورا پیاده بدید فرود آمد از اسب و پیشش دلید. گرفتند مرگ دگر را به وقت همین بوسه دادند بر چشم و سر از آن پس چنین گفت افراسیان بد در جهان اندر آمد نخواه از این پس نه کی پیزد نه جنگ به آبش خرایند میش و پلنگ برا شد ایتی تور دلیر کنون روی کشور شد از جنگ سی تو کشور همه ساده پرشور بود جهان را دل از آشتی کور به تو رام گردد زمان کنون برآساید از جنگ و از جوش خون کنون شهر توران تو را بندند همه دل به مهر تو آگنده. مرا چیز با جان همه پیش توست سحبت به جان و بتن پیش توست. همه شاد دل بادی و تندروست همه گنج بیرنج در پیش توست. پدروار پیش تو مت آفرم همیشه پر از خنده چ آورم سیاوش برو آفرین کرد سخت از گوهر تو مبلات بخت. سپاس از خدای جهان آفرین. کزوی از پرخاش و آرام و چین سپه دست سیاوش به دست بیامد به تخت مهی برنشست روی سیاوش نگه کرد و گفت این را به گیتی ندامین جفت نزین گونه مردم بود در جهان چونین روی بالا و فرمهان آن پس به پیران چونین گفت رد کاووز پیگستان دک که بشکی بر از روی چونین پسر چون این برزبالا و چندین بولم مرا دیده در خوبدیدار اوی بماند و دلم خیره در کار اوی که فرزند باشد کسی را چون دو دیده به در زمین آریم به افراسیاب شاهزاده و پاک نهاد ایرانی سیاوش را پذیر می شود فراسیاب دستور می‌دهد که کاخ شاهانه ای را برای سیاوش آماده سازد همه اسباب بزرگی را برای او فراهم کند از شیده یکی از نزدیکانش می که برای سیاوش هدایای فراوان برد و خود نیز به دیدار سیاوش رفته با او به بزم و باد گساری می, می روزها و شبهای سرشار از شادی و سرور بر آنها می‌گذرد. افراسیاب از داشتن سیاوش سخت خرسند است و شبی نیست که از با او نشستن و سخن گفتن قفلت کنند تا آنکه یک بار شبی افراسیاب به سیاوش میگوید شنیدم که چوگانباز باز توانایی هستی بگذار تا فردا به میدان چوگانبازی بازی رفیب سیاوش میپذیرد و فردا به میدان بازی میرود سیاوش از روی ادب به افراسیاب میگوید من مایل به رو در رویی با تو در میدان نیستم اما افراسیاب او را به سر پدرش شاکه کابو سوگن میدهد که در بازی به رقابت با او بپردازد انگاه افراسیاب همیه دلیران و سرداران خود را در گروه خود به میدان می آورد و از چند تن دلاوران توران می خواهد که یار سیاوش باشد سیاوش به با افراسیاب می گوید پادشاه اگر اجازه دهد من از میان ایرانیان همراهم هم برای بازی یارانی انتخاب کنم افراسیاب اجازه می و سیاوش هفتن از مردان خود را برمیگزیند و بازی آغاز می شد به گردان به میدان شدن گرازان و باروی خندان شدن چونین گفت پس شاه توران بدون <س müsse> یاران گزینیم در زخم گوی تو باشی بدان روی و زین روی من به هم همزین نشان انجامن سیاوش چونین گفت با چهری باشدم دست و چوکان به کار برابر نیارم زدن با تو گوی به میدان هماورد دیگر بجون گرستم سزاوار یار تو هم بر این په میدان سوار تو هم سپه گفتار گفت هارو شاه شد سخن گفتن هر کسی باد شد به جان و سر شاه کاووز گفت با من تو باشی هماورد و جفت هنر کن خن به پیش سواران پدید بدان تا نگویند کوبت کنند آفرین بر تو مردان من شکفته شود روی خندان من سیاوش بدو گفت فرمان تو راست سواران و میدان و چوگان تو راست سپه گزین کرد گلباد را چو گرسی وز و جهن و پولاد را چو پیران و هن جنگ جنگجوی چو هومان که برداشتی زاب گو به نسل سیاوش فرستاد یار ترو اینو چون این چیده نامدار دیگر اندر ایمان سوار تدید چو خواست مردفکن نرپشی سیاوش چون این گفت ای نامجو از اینان که یارت شدند پیشگو همه یار شاهند و تنها منم نگهبان چوگان و یکتا منم گریدون فرمان در شهریار یارم از ایران به میدان سوار مرا یار باشند بر زخم گوی بر سان که آیین بود بر نروح. په چوب بشنید از او داستان بدان داستان گشت هم داستان سیاوش از ایرانیان هفت مرد روزین کرد شاگسته کار کرد خروش طبیرز میدان بخواست همی خاک با آسمان گشت راست از آوای سنج و دم کررنای تو گفتی به جنبی میدان سجا آلی جمعیت انبوهی به دیدار بازی آمده افراسیاب هنرنمایی نمایی می کند و به گوی ضربهی سخت میزند که تا اوج آسمان می روید. سیاوش با اسب به جای افتادن گوی می رسد و او هم ضربهی چنان جانانه میزند که گوی از چشمها ناپدید می شود افراسیاب گوی دیگری به دست او و سیاوش گوی را بوسیده سپس چنان به گوی ضربه میزند که گویی گوی به دیدار ماه در آسمان رفته است افراسیاب از هنرنمای سیاوش خندان و شادمان میشود و همه زبان به ستایش سیاوش میگشاید آری نخستین ضربه به گوی را افراسیاب میزند سپهدار گوی زبالا بزد و عبرندر آمد چنانچون سزد سیاوش برانگیخت اسب نوخت چو گویندر آمد نهشتش بگرد بزد همچنان چون به میدان رسید به دانسان که از چشف شد ناخلی بفرمود از شهریار بلند که گویی به نزد سیاوش برند سیاوش آن گوی برداد بوز برآمد خروشیدن نای و پوز. سیاوش به اسب دگر برنشست بینداخت آن گوی لختی به دست و از آن پس به چوگان او کار کرد چنان شد که با ماه بیدار کرد روگان اون گوی شد ناپدید تو گفتی سپهرش حمید برکشید به میدان درون اسب چونان نبود کسی را چونان روی خندان نبود از آن گوی خندان شد افراسیاب سر نامداران برآمد آمد سخواب به آواز گفتن هرگز سوار ندیدیم برزین چون این نام دار که یه نام برگفت از این سان هر هران کس که با فرقی از دان بود میگوید ان کس کس فرح ایزدی و توانایی خدائی بهره دارد چن شگفتی های می آفرینند آنگاه حفراسی و سیاوش از بازی کناره گرفته به تماشای بازی تورانیان و ایرانیان می نشینند. پیروزی با یاران سیاوش است پس او به زبان پهلوی که تورانیان آن را نمیفهمیدند، به یارانش میگوید: «چار میکنید به میدان جنگ آمده آرام بگیرید و بگذارید ترکان هم به گوی رسیده زر بزنند و به گمانشان پیروز شود.» ایرانیان چنین میکنند و افراسی ها را از آن سخن گفتن سیاوش به زبان پهلوانی، پهلوی، پی می برد که. او جوان مردی از خود نشان می دهد و احترام میزبانان خود را نگه می دارد زمیدان به یک سونه گاه. دند بی آمد نشست از برای گاه شا سیاوخش بنشست با او به تخت به دیدار او شاد شد شاه سخت به چنین گفت پس نام جون. میدان شما را و چوگان رو گفت همی ساختند این بلشگر نبرد برامد همی تا به خورشید گفت چطور کان به تندی بیاراستن همین بردن گود را خواستند. سیاباش قمی گشت از ایرانیان چون گفت بر په روانی زبان میدان بازیست گر کارزا بریم گردش و پیچش و کار و بار چون میدان سرایت بتاوید روی به دیشان سپارید یک بار گو سواران اینان ها کشیدند نرد نکردم از آن پس کسی اسب گرد یکی گوی ترکان بینداختن به کردار آتش همی تاخت سپه چه آواز ترکان شنود بدانست کان پهلوانی چه بود در این میان افراسی به سیاوش میگوید از کسی شنیدم که در تیراندازی با کمان همانند و جفت ندارید چون افراسیاب چنین میگوید سیاوش کمان خود را به دست میگیرد اما افراسیاب کمان او را گرفته نگاهی بان کرده از برادرش گرسیوز میخواهد که با این کمان تیری بیاندازد اما گرسیوز هر چه میکوشد حتی نمیتواند زه کمان سیاوش را که بسیار سفت و محکم است بکشد چه رسد به آنکه تیری پرتاب کند ها،กิน می شود. افراسیاب کمان را از او گرفته زانو زده میگوشد که او نیز بکشد بکشد. نمیتواند و می خندد و میگوید من نیز در جوانی چنین کمانی داشتم. اما اینا کن روزگار گذشته است. در ایران و توران کسی نمیتواند این کمان را بکشد. بازوی سیاوش را چنین کمانی شایسته است. چنین گفت پس شاه توران سپاه گفت است با من یکی نچ که او را بگیتی کسی نیست جفت به تیر و کمان چون گشاید دو سوف. سیاوش تو گفتار مهتر شنید زه ترکش کمانه کیان برکشید سفه کمان خواست تا بنگرد یکی برگراید که فرمان برد کمان را نگه کرد و خیره بماد بسی آفرین بر گرامی بخواد به گرسی تیغ زندات آتمه خانه بمال و براور مزه بکوشی تا بر زهارت کمان نیامد به زه خیره شد بد گمان از او شاه بستد به زانو بشست بمالید خانه کمان را به دست به زه کرد خندان چونین گفت شاه اینت کمانی ای چو باید نیز گاه جوانی کمان چنین بود و اکنون دگر شد گمان آنگاه بر اسبریس بر فاصله معمول در آن روزگار نشانه و هدفی می گذارن. از سیاوش میخواهند که با تیر و کمان آن نشانه را بزند و سیاوش بدون مکیس بدون چک و زدن بر اسب بادپایی نشسته چنان به تندی بر نشانه تیر میزند که چشم ها خیره می مانن. آنگاه تیر چارپر دیگری و آنگاه تیر دیگری با شتاب و به تندی بر هدف می نشانن. چون به نزدیک هدف می روند، آن را مقربل همچون قربال سوراخ سوراخت می افراسیا، سیاوش را سخت آفرین میگوید نشانه نهادند بر اسفری سیاوش نکرد با کس مکیس. نشست از بر باد پایید شد دیفت دران و برامد قریب یکی تیر زد بر میان نشان نهاده به دو چشم گردن کشان دگر باره با چار پر بینده از باد و بکشاد پر نشانه دوباره به یک تاختن مقربل به بودن در انان را بپیچید بر دست راست بزد بار دیگر بران سوکت هاست کمان را به زهبر به بازو فکن بیامد بر شهریار بلند و آمد و شاه بر پای خاص و او آفرین زافرینند خواست و از آن جایه سوی کاخ بلند برفتند شادان دل و عجمه آره دیگر مجلس بسم و شادی بر پا می شود و افراسیاب دستور می دهد هدایای فراوانی برای سیاوش به کاخش برند اینک که افراسیاب سیاوش را از همه نزدیکانش دوستتر می‌دارند و دریغ و در که همیشه حسودان و تنگ نظران مهرورزی انسانها به یکدیگر را دوست نمی‌دارند و این خود انگیزه بسیاری از جنایتها و رویدادهای درنا که همه دورانها شده است آری افراسیاب به تورانیان میگوید شما نیز باید سروری و برتری سیاوش را پذیرا باشید روزگار به دینسان بر سیاوش میگذرد تا آنکه یک روز افراسیاب از سیاوش می که با هم به شکار روند بفرمود تا خاسته بشمرند همه سوی کاخ سیاوش برند زه کش به توران زمین خیش بود و را بر او بیش بود به خیشان چنین گفت او را همه شما خیل باشید و جمله رمه بدان شاهزاده چون این گفت شاه یک روز با من به گاه کیایی که دل شاد و خرم کنین روان را به نخچیر کنیم کنین بدو گفت هرگه که را یایدد بدان سو که دل راه نما یایدد. و بدین سان روزی افراسیاب و سرداران تورانی به همراه سیاوش به شکار در شکارگاه نیست، سیاوش همچون میدان چوگان و نشان زنی با تیر و کمان، فراوان هنرنمایی میکند گوره خری را چنان با شمشیر به دونیم میکند که گویی سیم و نقره را با ترازو کشیدن که دو پاره گوره خر در سنگینی به یک اندازه میشود آری، این برتری آشکار سیاوش بر همراهان تنگ نظر افراسیا سخت گران و به یکدیگر دیگر فاش بلند میگویند آمدن این شاخصاد از ایران به نزد افراسیاب موجب سرفکندگی ما شده است. باید برای رهایی از وجودش چاری بیندیشید. آریش کار به پایان میرسد و همه شاد دل باز میگردند. اینک افراسیاب شب و روز در بد و خوب با سیاوش است و آنچه در دل دارد جز با سیاوش با کسی در میان نمیگذارد. نه با جهن یکی از پهلوانانش و نه با از برادرش، آری سیاوش با افراسیاب به شکارگاه رفته است برفتند روزی به نخجیرگاه همی رفت با یوز و با باز سپاهی ز هر گونه با او برفت از ایران و توران به نخجیر رفت سیاوش به دشتن در اون گوردی چو باد از میان صفح بردمی سبک شد انان و گران شد رکیب همین تاختن در فراز و نشیر یکی را به شمشیر زد به نیم دو دستش ترازو شد و گورسیم به یک جوز یک سو گرانتر نبود نزاره شد آن لشکر و شاهزور بگفتن یک سر همه انجمن این از افراز و شمشیر زد آواز گفتن یک بادگر مارا بد آمد از ایوان بسر سر سروران سر اندر آمد به ننگ سزد گرف سازین با شاه جنگ و آن جایه سوی ایوان شاه همه شاد دل برگرفتند راه سفه چه شاد و چه بودی دو جم به جز وش نبودی به هم ز جهن و ز گرسی و هر که بود به کس راز نک شاد و شادن نبود مگر با وش بودی روز و شب از او برگوشادی به خند لب بر این گونه یک سال بگذاشتند غم و شادمانی به هم داشتند آری بدین سان شادمانه یک سال می تا تانکه یک روز پیران خردمند رایزن افراسیاب که مهر بسیار بر دارد به او میگوید تو در توران زمین چنان زندگی میکنی که گویی کسی در حال گذر از این سرزمین است حالانکه با این مهر فراوانی که افراسیاب به تو دارد و با این امید که روزی سرانجام تاج پادشاهی ایران را بر سر خواهی داشت چون پدرت پیر شده است بهتران است که اینجا در توران برای خود خانه و زندگی برپا تو اینک اینجا هیچ همخون و این نداری که غم تو را خورد نه برادر نه خواهر نه زن تو باید همسری شایسته برای خود برگزینی و بدان که افراسیاب شهریار جهان سه دختر دارد که ماه اگر آنها را ببیند چشمانان بر گر سی گرسی وزنی سه دختر با پروز و ریشه دارد که نبیرگان فریدونند و من خود نیز چهار دختر جوان دارم که می توانند بردگی تو را بکنند با این همه بهتران است که تو فرانگیز دختر مهتر و بزرگ افراسیاب را بزنی بگیری که زیبا رویان جهان پیش او هیچند با این ازدواج فر و شکو حد می گیرن. اگر بگذاری من از افراسیاب فرانگیز را برای تو خواستگاری خواهم کرد سیاوش یکی روز و پیران به هم نشستند و گفتند هر نید به بدو گفت پیران از این ووم و بر چنانی که باشد کسی برگذر بدین مهبانی که بر توست شاه به نام تو خسبت به آرامگاه چنان دان که خورم به تویی توی نگارش توی غمگسارش توی بزرگی و فرزند کابوز شاه سر از بس هنرها رسیده به ما به ایران و توران توی شهریار، زشاهان یکی پرمونر یادگاه به دل بر این بوم و بساز زشاهان گیتی توی بی نیاز قبی پی بسته خون کسی کجا داردی مه بر تو بسیم برادر نداری نخواهر نزن چو شاخ گلی بر کران چمن یکی زن نگه کن سزاوار خیش از ایران مبر درد و تیمار خیش پس از مرگ کاووز ایران تو راست همان گنج و تخت دلیران تو راست پس پربه شهریار جهان سه ماه هست بازی ورندر نهان که گر ماهشان دیده بودی راه از ایشان نبرداشتی دیده ماه سه اندر شبستان گرسی وزند که از مام و از باب با پر وزند نبیره فریدون و فرزند شاه که هم جاه دارند و هم تاج و گاه از پرده من چهارند خورد چو باید تو را بنده باید شموت. ولی ولیکن تو را آن سزاوارتر که از دامن شاختونی گوهر فرنگیس مهتر ز خوبان اوی نبینی نبی بگیتی چنان روی موی به ز سر به صحیب برتر است ز مشک سیه بر سرش اب سر است هنرها و دانش از اندازه بیش خرد را پرستار دارد ز پیش از افراسی آور بخواهی رواست چون او بد به کشمیر و کاول کجاست؟ شود ماه پرمایه پیوند تو درفشان شود فر تو چو فرمان دهی من بگویم بدوی بجویم بدین نزد او آبروی با شنیدن سخنان پیران به چشمان سیاوش اشک مینشیند آنگاه میگوید اگر نوشتی آسمان چنین باشد که دیگر هرگز به ایران باز نگردم و اینجا ماندگار شوم و دیگر پدرم که کاووس و پرورنده خودزال و روان روشنم رستم و دلاوران نزدیکم بهرام و زنگ شاوران را دیگر نبینم پدری کن و دختر افراسیاب را برای من خاستگاری کن شاهزاده بخت برگشته این سخنان را میگوید و آرام اشک میریزد پیران خردمند به او میگوید خردمند با روزگار ستیزه نمی آری میدانم که دوستان خود را در ایران به خدا سپرده ای با این همه گرچه اینک اینجا جایگاه نشست توست اما من بر این باورم سرانجام روزی بر تخت پادشاهی ایران تکیه خواهی زد سیاوش به پیران نگه کرد و گفت فرمان یستان نشاید گفت. اگر آسمانی چنین است رای مرا باسه کنه نیست پا اگر من به ایران نخواهم رسید نخواهم همی روی دید چو دستان که پروردگار من است تمتن که روشن روان من است چو بحرام و چون زنگه شاوران جزی نامداران و گنداوران چون از روی ایشان بباید مرید به توران همی خانه باید گزی، پدر باشو این کد خدایی بسازد مگو این سخن پیش کس جز براز همین گفت و مشگان پر از آب زرد همین برزدی هر زمان باد سر به دو گفت پیران با روزگار نسازد خرد یافته کارزا نیابی گذر تو ز گردان سفر کزوی است پرخاش و آرام و می. ایران اگر دوستان داشتی به یزدان سپردی یا بگذاشتی، نشست و نشانت کنون ای است تو را تخت ایران به دستندر است بگفت اینو برخاست از پیش اوی تا آگاه گشت از کم و بیش او به شادی بشد تا به درگاه شاه فرود آمد و برگوشادند را آری پیران به درگاه افراسیام آمده است به احترام در برابرش ایستاده و این پا و آن پا میکند افراسیاب پی میبرد که پیران خردمند درخواستی دارد پس به او میگوید بخواهان چه میخواهید اگر کسی در بند و زندان من است آزادش میکنم اگر زر و سیم میخواهی میدهمن پیران خردمند به او میگوید میدانی که من از زر و سیم و خواست بینیازم من اینک آمدم تا پیامی از سوی سیاوش را با تو بازگویم سیاوش به من گفت به تو بگویم تو چون پدر مرا پروردهی و از نیک و بد ساختی باز هم کت خدایی و بزرگی کن و دخترت فرنگیس را به همسری من باشنی در آور با شنیدن این سخنان در اندیشه فرو رفته سپس با چشم اشکبار به پیران میگوید من پیش از این نیز با تو این داستان را که مرد هوشمندی برایم گفته است در میان گذاشتم که کسی که بچه شیر نرمی پروراند، رنج میبرد. سرانجام جان سالم به در نخواهد بود. میکوشد و همه چیزش را از دست میدهد و شیر بچه بزرگ و توانا می شود و سرش را به چنگ از تنش جدا می کند. از سوی دیگر بدان ستار شماران با استولاب آینده را به من نمایاندند که مرا با نبیره خود در آینده برخوردهایی در پیش است. و او تخت و تاج و گنج و سپا هم را از من خواهد گرفت اکنون پی میبرم که آنچه به من گفته شده درست است چه از آمیختن این دو نژاد شهریاری پدید خواهد آمد که جهان را خواهد گرفت آدم عاقل چرا درختی بکارد که میوه آن زهر و ریشش چون کبست تخ باشد از نژاد کاووس و افراسیاب آتشی به بار خواهد آمد که با آب هم ستیز می کند. و نمیدانم فرزندی که از این پیبند زاده خواهد شد مهرش به توران خواهد کشید یا سوی ایران من سیاوش را چون برادری نگهداری خواهم کرد اما دخترم را به اون نخواهم داد آری پیران به خواستگاری به نزد افراسیاب آمده است همی بود بر پیش او یک زمان بدو گفت سالار نیکی گمان چندین چه باشی به پیشم به پای چه خواهی زگیتی؟ کامت رای سپاه من و جنج من پیش توست مرا سودمندی به کمبیش توست کسی کوب زندان و بند من است گشادنش درد و گزند من است ز خشم و ز بند من آزاد گشت ز بحرت تو پیگار من باد گشت ز بسیار و اندک چه خواهی بخوا ز تیغ و ز مهر و ز تخت و کلا خردمند پاسخ چنین داد باز از تو مبادا جهان بی نیاز مرا خواسته هست و گنج و سپا به بخت تو هم تیغ و هم تاج و گاه ز نزد سیاوش پیامی براز رسانم به گوش سپه و مرا گفت با شاه توران بگوی که من شاب دل گشتم و نامجور بپروردیم چون پدر بر کنار همه شادی آورد بخت تو بار کنون همچنین کت خدایی تو ساز به نیک و بد از تو نیم بی نیاز. پس پر تو یکی دختر است که ایوان و تخت مرا در خورست فریگیز خاند همی مادرش شاد شادگر باشم در خورش پرندیشه شد جان افراسیان چون گفت با دیده کرده پرام من راندم پیش از این داستان نبودی بران گفته هم داستان چون این گفت با من یکی حوشمند که جانش خرد بود و رایش بلند که ای دای یه بچه شیر نرد چرنجی که هم جان نیاهی به سر. به و او را کنی پرهنر تو بیبر شوی چون بیاید به برد. نخستین که آیچ نیروی جنگ سر پرورانندگی گرد به چنگ. و دیگر کجا پیش از این موبدان، ردان و ستار شمر بخردان، سترلاب برداشتندی به بر همین راندندی همه در بدر. مرا با نویر شگفتی بسی نمایت همی کار دیده کسی سر تخت و گنج و سپاه مرا همان کشور و بوم و گاه مرا کنون باورم شد که او این بگفت که گردون گردان چه دارد مو از این دونشت چرا کش باید درختی به دست که بارش بود زهر و بیخش کبست ز کابوس و از پخم یا چه آتش بود تیز با موج آم ندانم به توران گراید بمه وگر سوی ایران کنند پاکچه چه چرا برگمان زهر باید کشیم دم مار خیره نباید گذیم بدارمش چندانک ایدر ای در بود مرا او به چای برادر بود اما پیران مهوان ناامید نشده باز به گوش افراسیاب میخواند که به گفتار ستار شماران باور مکن و بدان که از این دونجات شهریاری به دنیا خواهد آمد که بر هر دو کشور ایران و توران پادشاهی خواهد کرد و هر دو کشور را از رنج جنگ و پراکندگی آسوده خواهد کرد از آمیخته نژاد کیقباد و فریدون چیزی بهتر نباشد وانگهی هی هیچ کس با اندیشیدن جلوی بودنی و سرنوشت را نمی بگیرد سرانجام افراسیاب میپذیرد و به پیران میگوید گوید از رای و تو هرگز بلی پدید نمیآید. پیران به احترام افراسیاب دوتا شده تعظیم کرده به شادی راهی دیدار سیاوش می شود. بدو گفت پیران <تصفيق> ای شهریان دلت را به این کارمگین من دارد. کسی که از نجاد سیاوش بود خردمند و بیدار و خامش بود. به گفت ستار شمر مگوییچ خردگیر و کار سیاوش بسیج. کسین دو که یکی نامور بیاید برارت به خورشید سر به ایران و توران و شهریار دو کشور برا ساید از کارزار ز تخم فریدون و از کیقوباد فروزنده ترزی نباشد و وگرزین دگر راز دارد سپه نیفت سایدش هم به اندیشه میر بخواهد بودن بیگمان بودنی نکاهد به افسودنی نگه کن که کار فرخ بود زبختان که پرسید پاسخ بود به پیران چنین گفت پس شهریا رای تو بربد نیاید به کار به فرمان و رای تو کردم سخن تو هرچند بباید به خوبی بکن دو تا گشت پیران و بردش نماز، بسی آفرین کرد و برگشت باز به نزد سیاوش خرامید سود به دو برشمردن مردان کجا رفته بود نشستند شادان دلان شب به هم به باده بشستند جان را زقن توران زمین قرق شادی و سرور است عروس را به خانه بخت می فرنگیس را به کاخ سیاوش می آورند پرخوندگی این شادمانی زندانیان از رها می شود و شادی به اوج می رسد پس پیران و سیاوش به دیدار افراسیاب رفته او را سخت ستایش کرده از وی سپاسگزاری می کنند آری فرانگیز به خانی بخت می رود. بیامد فریگیست چون ماهن و به نزدیکان تاج ور شاهن و به یک هفته مرقان ماهی نخو نیامد سر یک تن اندر نهفت زمین باغ گشت از کران تا کران ز شادی و آواز رامشگران. بدین کار بگذشت یک هفته نیز سپه بد بیاراست بسیار چیز از اسبان تازی و از گوزپند همان جوشن و خود و تیغ و کمند ز دینار و از بدرهای درم ز پوشیدنی ها و از بیش و, کم و از این مرز تا پیش دریای چین همه نام بردن شهر و زمین به فرسنگ صد بود بالای او نشایست پیمود پهنای او نبشتند منشور بر پرنیان همه پادشاهی به رسم کیان به خان سیاوش فرستاد شاه یکی تخت زرین و زرین کلا و از آن پس بیاراست میدان سور هران کس که رفتیز نزدیک و دور میو خان و خالیگران یافتی بخوردی و هرچند بر تافتی ببردی و رفتی سوی خان خیش بودی شاد یک هفته مهمان خیش در بسته زندان ها برگ شاد از اون شادمان من بخت و او نیز شاد به هشتم بیامد سیاوش خگاه عبا گرد پیران به نزدیک شاه گرفتند هر دو بر او آفرین که ای مهربان شخص یار زمین سرت سبز باد و دلت عرجمند منش برگذشته ز چرخ بلند وز آن باز گشتند شاد بسی از جهاندار کردند یا چون این نیز یک سال گردان سپه همی گشت بیدار بر داد و میر. سال دیگری نیز می گذارد. تا آنکه یک روز فرستادی از سوی افراسیاب به دیدار سیاوش آمده و از افراسیاب برای او پیام می آورد که شاید از کنار من بودن خسته شده باشی من از اینجا تا چین را در اختیار تو گذاشتم تا هر جای را که میپسندی برای زیستن انتخاب کنی براه هفت و به جای دلخاخ خود به سرزمین فرمان رواییت برود سیاوش شادمان با ایرانیان همراه و سپاهیان و همسرش فرانگیز که در یک اماری و کالسک او را نشنده به سوی سرزنین خودن به راه میفتد و شگفتان که پیران مهبان نیز با او همراه میشود چرا که پیران خود زاده ختن بود فرستاده آمد ز نزدیک شاه به نزد سیاوش یک نیکخواه که پرسد همین شاه را شهریار همین گوید این مهتر نامدار بود کتز من دل بگیرد همین وزی در نشستد گزیرت همین ازی در تو را دادم تا به چین یکی گرد برگرد و بنگر زمین به شخصی که آرام و را آگدد همه آرزو آرزوها به جای آیدد. به شادی بباشو به نیکی بمان ز خوبی مپرداز دل یک زمان سیاوش به گفتار و یشت شا. بزد نای و کوس و بنه برنهاد سلیخ و سپاه و نگین و کلا ببردند با گنج با او براه فراوان اماری بیاراستند پس پرد خوبان به پیراستند فرنگیس را در اماری نشان بنه برنهاد و سپخ را براند از او باز نکس از پیران گرد بنه برنهاد و سپخ را ببر، به شادی برفتند سوی خوتن همه نامداران شدند جمن که سالار پیراند از آن شهر بود که از بدگمانیش بی‌بهر بود. <تصفيق> یک ماه به شادی در ختن می‌ماند. آنگاه سیاوش به همراه پیران به سوی سرزمین‌های که افراسیاب فرمان روایی آنها را به سیاوش سپرده بود، براه به راه تا آنکه به جایگاهی می‌رسند که از رمید چون بهشت بود. پس سیاوش به پیران می‌گوید من در این جا برای خود شهر و خواهم ساخت که چشم جهانیان را خیره سازد به جایی رسیدند کاباد بود یکی خوب فرخنده بنیاد بود به یک روی دریا به یک روی راه به یک روی بر کوه و نخجیرگاه درختان بسیار و آب روان همیشه دل سال خورده جوان سیاوش به پیران سخن برگشاد اینت برای به فرخ نهاد بسازم منی در یکی خوب جای که باشد به شادی مرا رهنما برارم یکی شاستان فراخ فراوان به دواندر ایوان و کاخ نشستنگاهی بر فرازم به ما چنان چون بود در خور تاج به بدو گفت پیران ای خوب رای برام رو که اندیشه آید به جای چو فرمان دهد من از این سان که خواست برارم یکی جای با ماه راست نخواهم که باشد مرا بوم و گنج زمان و زمین از تو دارم پنج به دو گفت ای hey, بختی درخت بزرگی تو آری ببا مرا گنج خوبی همه زانه توست به هر جای رنج تو بینم نخوست یکی شخص سازم بدین جای من که خیله بماند درو انجمند در بازگشت سیاوش در دل احساس ناخوشایندی دارد. پس از ستاره شناسان میخواهد که از آینده شهری که میخواهد برپا کند، و را آگاه سازند. و طریق و درد که ستاره شناسان پس از بررسی گردش چرخ و ستارگان به او میگویند که این شهر برای او فرخنده نخواهد بود. به دل و عشق به چشمان سیاوش مینشینند. و چون پیران از او میپرسد که ترا چه شده است، سیاوش پیشگویی ستاره شماران و پیشبینی پیامبرگونه خود از آیندی شومش را برای او فاش میکنه به او میگوید که چگونه به زودی خونش ریخته خواهد شد و شهر و کاخی که خواهد ساخت جاگاه نشسته افراسیاب خواهد گردید. از آن بوم خرم چو گشتند باز سیاوش همی بود با دل به راز از اخترشناسان بپرسید شاه که گر سازمی در یکی جایگاه از اون فر رو بختم به سامان بود وگر کار با جنگ سازان بود به یک سر به شاه گوزین که بس نیست فرخنده بنیاد این از اخترشناسان براورد خشم دلش پر درد و پر آب چشم انان تگاور همی داشت نرم همی ریخت از دیدگان آب گرم دو گفت پیران ای شهریار چه بودد که گشتی چنین این آر چون این داد پاسخ چرخ بلند دلم که پر درد و جانم نشد. که هر چند گرداورم خواسته همان گنج و هم کاخ آراسته به فرجام یک سر به دشمن رسد ولی بد بود مرگ بر تن رسد چه خورم شود جای آراسته حدی داید از هر سوی خواسته نباید مرا شاد بودن بسی بر آن جای دیگر کسی نه من شادمانم نه فرزند من نه پرمای گردیز پیوند من نباشد مرا زندگانی در هاست ذکا خود ز ایوان شبم بی نیاز تخت من گاه افراسی یاب کند بی مرگ بر من شد شتا چونین است رای سپهر بلند گهی شاد دارد گهی ماست و پیران به سیاوش میگوید بی چنین اندیشه های تلخی را در سر مپروران که افراسیاب از جنگ و بدی دل شسته و به مهر و شادی روی آورده است من نیز تا جان در بدن دارم پاسدار تو هستم سیاوش بدو گفت آگاهی های من از سرنوشتم از توانای خداداد من است من اینها را به تو میگویم تا نگویی پس چرا از سرنوشت خود آگاهی نداشت به سخنان امروز من خوب گوش دار زمان خیلی به درازان نخواهد کشید که بدون خاست افراسیاب من کشته میشوم و تو نیست که با من بر سر پیمانت خواهی ماند کاری از دستت ساخته نخواهد بود کشتنم از گفتار بد بدکاران باشد بار دیگر ایران و توران بر یکدیگر خواهند شورید پرچمهای سپاهیان جنگ و کشتار و قارت می بینم. پشیمانی افراسیاب را میبینم که دیگر سودی برایش نخواهد داشت جهان از خون ریخته شده من به جوشش در خواهد آمد. انگاه سیاوش به پیران میگوید خداوند این سرنوشت را خواسته است پس بیا شاد باشیم و دل به چنین دنیایی نبندیم بدو گفت پیران ای سرفراست مکن خیر اندیشه ی کفرا سیاب از بدی دل بشست ز شادی به چین خواستن گشت سوست مرا نیست تا جان با در تنم بکوشم که پیمان تو نشکنم نمانم چه بادی به تو بگذرت وگر موی بر تو هوا بشمرد سیابش به دو گفت ای نیک نام نبینم جز از نیک نامید کام همه راز من آشکارای توست که بیدار دلبادی و تندروست. من آگاهی از فره یز دهم هم. از راز چرخ بلند آگه هم. بگویم تو را بودنی ها درست از ایوان و کاخن در آگم نخوست. به تا نگویی چو بینی جهان که این برسیابش چرا شد نهان. تو ای گرد پیرانه بسیار خوش. بدین گفته ها پهن مگشاد. پراوان بدین روز روزگار که بیکام بیدار دل شهریار شوم زار کشته و بر بیگناه کسی دیگر آراید این تاجگاه تو پیمان همین داری و رای راست ولی فلک را جزین است خواست ز گفتار بدگوی و از بخت بد چون این بر تنم بد رسد برا شوبد ایران و توران به هم زکین شود زندگانی دوشم پر از رنج گردد سراسر زمین زمانش شود پرز شمشیر کین بسی سرخ و زرد و سیاه و بنفش از ایران به توران ببینی در نفرش. بسی قارت و بردن خواسته پراگندن گنج آراسته بسا کشفراکان به پای ستون بکوبند و گردد به جویا شور سفهدار توران ز کردار خیش، پشیمان شود همز گفتار خیش، پشیمانیان گه ندارج سود که برخیزد از بوم آباد دود. از ایانو توران برایت خروش، جهانی خونه من آید به جوش. جهاندار بر چرخ چونیم نوشت به فرمانو بردهد هرچه کشت. بیا تا به شادی دهیم خوریم، چگاه گاه گذشتن رو چه بندی دلن در سراغه سپنج چه یازی برنج و چه نازی بگند کسان رنج نیگر کسی برخورم جهاندار دشمن چرا پرورد پیران چون سخنان سیاوش را میشنود در دل با خود میگوید اگر سیاوش راست بگوید این بد را من سبب شدم که از افراس خواستم او را به توران بخاند من سیاوش را به توران کشیدم اما از سوی دیگر پیران در دل میگوید سیاوش چگونه میتواند راز آینده را بخواند و بداند او دل تنگ ایران و کیکاووز است که چنین حرف هایی میزند پیران دلداری می دهد چو بشنید پیران و اندیشه کرد زه گفتها رو شد دلش پرز درد به دل گفت از من بد آمد گر گرو راست گوید همین این سخن. فرا من کشیدم به توران زمین پراگند من در جهان تخم کین که او را به توران کشیدم به رنج سپردم به دو کشور و تاج و گنج وزان پس چونین گفت با دل به مهر از جنبش و رسم گردم سپر چه داند به این رازها را کشاد همانا که ایرانش آمد یاد، زه کاووس و از تخت شاهنشهی به یاد آمدش روزگار مهی دل خویش از آن گفته خورسند کرد نه آهنگ رای خیرد کرد همه راه از این گونه بود گفته گون دل از بودنی ها پر از جست و جول. شون از پشت اسبان فرود آمدند ز گفتار بیکار دم زدند یکی خانه زرین بیاراستند می و رود و رامشگران خواستند ببودند یک هفته زینگون شاد ز شاهان گیتی گرفتند یا چندی نگذشت که از سوی افراسیاب برای پیران و سیاوش پیامی آمد که پیران به چین و هند رود و باج و خراج آن سرزمین ها را برای افراسیاب گرد آورد و سیاوش با آنکه افراسیاب سخت دلتنگ اوست به هر جایی که دلخواه اوست بماند و فرمان کند با دریافت این پیام ها پیران با سپاهیانش به سوی چین و هند می و سیاوش خود را با آن سرزمین زیبا رسانده و شهر دل خواهش سیاوش گرد را برپا می کند. چون آمد بدان شاستان دست یاست. دو فرسنگ بالا و پهنا بساست. از ایوان و میدان و کاخ بلند. ز پالیز و از گلشن عجمند. بیا راست شهری به بهشت. به خامون گل و سنبول و لاله بر ایوان نگاری چندین نگار. ز شاهان و از بزم و از کارزار. نگار سر و تاج کابوز شاه نوشتند با یاره و گرز و گاه بره تخت او رستم پیلتن همان زال و انجمن انجامن دیگر سو افراسیاب و سپاه چو پیران و گرسیب از کین خواه به ایران و توران شدن شارستان میان بزرگان یکی داستان به هر گوشه ای گمبدی ساخته سرش را به ابرند افراخته نشسته سراینده رامشگران سران در ستاره سرای سران سیاه گردش نهادند نام جهانی از آن شاستان شاد زمان می گذرد پیران از چین و هند باز می گردد و شتابان راهی دیدار شهر سیاوش سیاوش گرد می شود. و سپس به دیدار فرنگیست دختر افراسیاب و همسر سیاوش رفته به او هدایای فراوان می‌دهد. و چون به خانه خود باز می به همسرش گلشه می گوید سیاوش بهشتی به ساخته است که بسیار دیدنی است پانگاه به دیدار افراسیاب می روید. و از آن جایه نزد افراسیاب، همی رفت برسان کشتی بر آب بی آمد بگفتان کجا کرده بود، همان نیز کس کشور آورده بود و از آن به کار سیاوش رسید، سراسر همه یاد کردان چیدید ز کار سیاوش بپرسید شاه، و از آن شهران کشور و جایگاه بدو گفت پیران، خرم به کسی کو ببیند به همانا نداند از آن شهر باز نخورشید از آن مهتر سرفران است یا شهر دیدم کند در زمین نبیند نگر کسب ایران و چین سبس باغ و میدان و آب روان برامی گفتی خرد با روان آری پیران به افراسیاب میگوید دیگر از روز کار نباید گل مند باشی که دامادی چنین بحره تو کرده است افراسیاب شادمان میشود بس برادرش گرسیوز می به سیاوش گرد برمد به گرسیوز میگوید سیاوش را که چنین دل به توران بسته و با آنکه از یارانش گودرز و بهرام و پدر کیکاووس دور مانده چنین شهری می سازد و کاخی برای دخترم فرنگیس برپا می کند و او را چنین گرامی می دارد سخت ستایش و به او فراوان مهربانی کند و برای دخترم هدایای فراوان ببرد گرسیوز با هزار سپاهی و همراه و هدایایی که چشفها را غیره میساخت به سیاوش گرد می رود و سیاوش با مهر فراوان او را پذیرا می شود. آنگاه گرسیوز و همراهانش در کوی و برزن و کاخهای شهر به گردش در می و این گردش سراغاز گردش دگرگونه روزگار بر سیاوش دلیر می شود. با دیدار از آن همه شکوه و زیبایی و خوشبختی آتش حسادت در دل سیاه گرسی و از بر می گردن. با خود میگوید سال دیگری نخواهد گذشت که سیاوش دیگر کسی را به حساب نخواهد آورد هم پادشاهی و هم تاج و تخت و هم گنج و بوم و بردارد دل و مقص گرسی و از آمد به چوش تر شد به آیین خوش به دل گفت سالی دگر بگذرد زیاوش کسی را به بکست نشمارن همش است هم تاج و گا. همش گنج و هم بوم و بر هم سپاه دهان دلخیش پیدا نکرد همی بود پیچان و رخساره زرد به گفت برخور از زنج خیش همه ساله شادان از گنج در کاخ زرین دو تخت نشستند شادان دل و نیکبخت نوازنده ی رود با می گسار بی آمد بره تخت گوهرنگار ز نالیدن رود و چنگ و سرود به شادی همی داد دل را از شبیب بزم و بادنوشی صبح هنگام سیاوش مهمانان خیش گرسیوز و همراهانش را به میدان میبرد بار دیگر هنرنمایی سیاوش در چوگان ها را خیره گرسی وس به سیاوش میگوید شنیدهام در نیزه پرانی و تیراندازی نیز همتاو و حمالی نداری پس این هنر خود را نیز به نمایش بگذار سیاوش دستور میدهد که پنج زره را تو در توی هم قرار دهند پس نیزه ای را که پدرش کیکاووز در جنگ مازندران با خود داشت در دست میگیرد و بر اسب نشسته به سوی پنج زره رفته با نیزه بند زره ها را از هم میگسلد. پس با نیزه زره ها را از زمین بر میگیرد و به دو دست پتاب میکنند. سواران همراه گرسی بس خود را به زره ها میرسانند اما هیچ کدامشان نمیتوانند حتی یک زره سنگین را از روی زمین بردارد. انگاه سیاوش دستور میدهد چهار سپر گیلکی دو از چوب و دو از آهن را پشت در پشت هم قرار دهند و چنان با کمان تیر به ها پرتاب می کند که تیرها از چهار سپر می گذرد. آری گر گرسیوز از سیاوش می که با نیزه و تیر و کمان هنر نمایی کند به برزت سیاوش به کار دست به زین در آمد ز تخت نشست زره را به هم بر ببستند که از یک زره رسیدی به رنج نهادن خط آوردگاه نظاره بروبرز هر سو سپاه سیاوش یکی نیزه شاهبار کجا از پدر داشتی یادگار که در جنگ مازندران داشتی به زنجیر بر نیزه بگذاشتی به آوردگاه رفت نیزه به دست اینان را بپیچید چون پیله مست بزد نیزه و برگرفتان زره زره را نمادیچ بندو گره از آورد نیزه برآورد راست زره را بینداخت زانسوک خواست سواران گرسید از جنگس هاست برفتند با نیزه های دراز قرابان بگشتند گرد زره نبر شد زره یک گره زیاوش سپر خواست خیلی چهار دو چوبیم دو از آهن آب دار کمان خواست با تیرهای خدنگ ششن در میان زد سه چوبه به چنگ یکی در کمان راند و بفتار ران نظاره بگرد سپاک گران بدان چار چوبیم و آهن سپر گذر کرد ایکانان نافر بذرد هم بران ده چوب تیر در او آخرین خان، برنا و پی یکی در گزاره نمان، همین هر کسی نامیستان بخواهد. در سیوز که از این همه دلاوری سیاوش، غرورش در هم شکسته است، به او میگوید برگیز تا با هم کشتی بگیریم. که اگر تو مرا بر زمین بزنی، من دیگر در میدان نبرد پیدایم نخواهم. سیاوش به او میگوید این نگو که تو بزرگتر و دلاورتری از ترکان همراحت کسی را انتخاب کن با من بجنگد گرسیوس میگوید این بازی و سرگرمی است نه آوری. سیاوش میگوید نبرد دو حتی اگر با به خندان باشد در دل خاش را دامن میزند گرسیوس از ترکان همراهش میپرسد چه کسی آماده کشتی گرفتن با سیاوش است گرویزره پهلوان تورانی گفت من آماده نبرد با او هستم و سیاوش می گوید یکی دیگر هم همراه او کنی و دمور پهلوان دیگر ترکنیز در کنار گرویزره به میدان نبرد و کشتی گرفتن با سیاوش می آری گرسیوز به سیاوش پیشنهاد زور می دهد بدو گفت گرسیوز ای شخیار به ایران و توران تورانیست یار بیا تا منو تو به آوردگاه بتازیم هر دو ز سپا بگیریم هر دو دوال کمر به کردار جنگی دو پرخاش کرد زه ترکان مرا نیست هم تا کسی چون نبینی ز اصبان بسی به میدان ما نیست هم تای تو هم آورد تو گرب بالای تو گرین دونک بردارم از پشت زین تو را ناگهان برزنم بر زمین چنان دان تو و دلاورترم به اسب و به مردی ز تو برترم وگر تو مرا برنهی بر زمین نگردم به جایی که جوگرد چی. سیاوش بدو گفت این خود مگو که تو مهتری نیز پرخاش جو جز از تو ز ترکان کسی برگزین که با من بگردد نبر رای که بدو گفت گرسی بس، ای نام جو که ما چون به روی روی زمانی به بازی نبرداریم نبر کینه بر روی زرداریم زیاوش بدو گفت این رای نیست به میدان به نسل منت جای نیست نبرد دوتن جنگ مردان مورد پر از خش مگر چهره خندان ز گیتی برادر توی شاه را همی زیر نعلاوری ماه را کنم هرچگویی به فرمان تو بر این بشکنم عهد و پیمان تو زیاران یکی شیر جنگی بخوان بر این تیز تکباری برنشان بخندی گرسیو و نام جوی. همانا خوش گفتار او به ترکان چنین گفت از سرکشان که خواهد که گردت بگیتی نشان یکی با سیاوش نبرد آورد سر سرکشان زیر گرد آورد سراینده بودن یه باگره به پاسخ بیامد گروی زره منم گفت شایسته کار کرد اگر نیست او را کسی هم نبرد بدو گفت گرسیف از ای شهر یا ز گردان لشگر نیست یا سیاوش بدو گفت از تو گذشت نبرد بزرگان مرا خار گشت از ایشان دو یل به میدان نبرد مرا خواسته گرفتند پیچان دمور و گروی سیاوش بدان هر دو بندارد به بند میان گروی زره فرو بر چنگال و برزت گرفت زیم برگرفتش به میدان بگن نیازش نیامد به بند کمن زان پس بپیچید سوی دمور گرفتش سر و گردن او به زور چنان خارش از پشت زین برگرفت گردان بماندن زود در شگفت چنان پیش گرسی و داور گشت که گفتیه یکی مور دارد. بکش. پر اود آمد از اصف و بکش آگده پر از خنده بر تخت زرین نشست سیاوش برای میهمانان خود گرسیوز و همراهان زیافتی شاهانه برپا می کند. و چون هنگام بازگشت آنها فرا می رسد برای افراسیاب نامهی نوشته سخت ستایش می میکند و همراه نامه برای او هدایای شاهوار نیز میفرستد گرسیوز و همراهان در راه بازگشت همه گفتگویشان خای سیاوش است گرسیوز به همراهان میگوید آمدن او از ایران برای ما رویداد بدی بود. دیدید چگونه دو پهلوان ماگروی و دمور به دستو خار و زبون گشتن؟ و تا رسیدن به درگاه افراسیاب جز بدگویی از یاوش سخن دیگری با یک دیگر نمیگوند. سخن رفت یک بادگر از آن فرخونر شاهان گوم و برد. چون این گفت گرسی وزی کینه جون. ما را بد آمد از این فراندران. یا چی مرد را شاه از ایران بخان؟ از ننگ ما را به خوی دردشان. دو شیر جیان چند مور و گروی که گردان پرخاش دوی چنان زار و بیکار گشتن دوکار ز چنگال ناپاک دل یک سوا سرانجام از این پک سراند سخون رو نصر بینم این کار را نمبر تا به درگاه افراسیه نرفتند در این جوی جز تیده. در پیشگاه افراسیاب گرسیوز از سفر خود گزارشی داده نامه سیاوش را به افراسیاب میدهد. افراسیاب بسی شادمانی می گرسیبز باز می گردد و تمام شب خواب به چشمانش راه نمی آبد. حسادت دل سیاهش را انباشته است پس بران می شود که روزگار سیاوش پاک دل را سیاه کند چون فردا به نزد افراسیاب میرسد با او خلوت کرده و به دروغ به برادر میگوید چه نشستهی که از نزد کیکاووس پیام‌آوری به نزد سیاوش رسیده است و نه تنها از نزد کیکاووس و ایران که از چین و روم نیز برای او پیام فرستاده شده است و دیگران که سپاهیان فراوانی به گرد او جمع شدهاند میترسم ناگهان از سوی او برای تو گرفتاری بزرگی درست شود گرسی سیوز بدنهاد برای آنکه آتش خشم برادر دیوانی خود افراسیاب را تیز کند بار دیگر بر سر داستان کخمه سلم و تور و ایرج پسران فریدون رفته و میگوید اگر تور دلش به در نیامده بود ایرج را نمی کشد. او به برادر می گوید دو کشور ما توران و ایران چون آب و آتش هستند و تو نمی توانی این دو را در کنار هم بداری در پایان میگوید، گوید من این راستی خاراباتو نمی در جهان نامم به بدی خانده میشد همه شب بپیچید تا روز پاک چه شب جامعه تیره را کرد چاک سر مرد کینندر آمد زخاب، خواب بیامد به نزدیک که فراسیا. ز بیگانه پردخت کردند جای نشستند و جستند هر گونه رای بدو گفت گرسی وز ای شهر سیاوش، زیابش دگر دارد آ آینو کار. درست آمد سه کاووز شاه نهانی به که او چند راه ز روم و ز نیزش آمد پیام همی یاد کاووز گیرد به جام بر او انجمن شد فراوان سپاه بپیچد به ناگاه از او جان شاه اگر تو را دل نیاشتی دوشم زگیتی بری رچ نکردی ستم دو کشور که چون آتش تیز و آب به دل یک زدیگر گرفته شتاب تو خواهی کشان خیر جفت آوری همین باد را در نهفت آوری اگر چردمی بر تو این بدنهان مرا نامی بودی در جهان افراسی ها با شنیدن سخنان گرسی و سهد غمگین شده به او میگوید همخونی و مهرتو با من سبب گردید که بر این حقایق دست یابید اما بگذار من نامه سیاوش را بخانم و روز به گفته های تو بیانیشم انگاه چاری این درد را بازگویم دل شاه از آن کار شد دردمند پر از غم شد از روزگار گزند بدو گفت بر من تو را مهر خون به جنبید و او با تو را رقمون روز هم در این نامه رای آوریم سخمهاش بهتر به جای آوریم این را گردت خرد را درست بگویم که درمان چه باید جست؟ سروز میگذرم در چهارمین رومین روز باره دیگر افراسیاب و گرسیوز در خلوت با هم به گفتگو می نشینن. افراسیاب به برادرش گرسیوز میگوید تو یادگار پدرمان پشنگ هستی و من باید راز خود را به تو فاش بگویم وانگاه از کابوسی که در خواب به سراغش آمده بود از آشتی با سیاوش از دلبریدن سیاوش از پدر و ایران از مهر سیاوش به او باز مهربانی های خود با سیاوش و اینکه حتی دخترش را به همسری او درآورده نزد برادر سخن میگوید و در پایان به وی میگوید اینک اگر خون او را بریزم نزد بزرگ و کوچک و خداوند گناه بزرگی کردم آیا بهتر نیست او را به نزد پدرش كیكاووس به ایران بازگردانم چهارم چو گرسیبز آمد به در كله بر سر و تنگ بسته کمر، سپهدار توران ورا پیش خواند زه کار سیاوش فراوان براند به دو گفت ای یاد کار پشنگ چه دارم جز از تو بگیتی بهچنگ همه رازها بر تو باید گشاد به ژرری ببین تا چه آید از آن خواب بد چون دلم شد قمی به مقت زندرا ورن لختی کمی نبستم به جنگ سیاهش میان نیامد آمد از اونیز ما رازیان چو آن تخت پرمای پترود کرد خردتار کرد و مرا پود کرد ز فرمان من یک زمان سر نتافت چو از من چنان نیکویها بیافد سپردم دو کشور و گنج خیش نکردین یاد از غم و رنج خیش به خون نیز پی وصلی ساختیم در از کین ایران بپرداختیم نپیچیدم از گنج و پرزند روی گرامی دو دیده سپردم به دوی پس از نیکویی ها و هر گونه رنگ فدا کردن کشور و تاج و گنج گری من بد سگالم بروی زگیتی براید یکی گفتگوی بروبر بر ندارم به بد گر از من بدون اندکی بدرسد زبان برگشایند بر من مهان درفشی شوم در میان جهان نباشد پسند جهان آفرین نمیز از بزرگان روی زمین اگر ما بشوریم بر گناه پسندت چون این داور هور ما ندانم جزان کش بخانم به درد وزی درد سوگ پدر اگر گاه جوید گرنگش داری، از این بومو بر بگسالت داوری گرسی وز سیاه دل و میگوید این کار بزرگا خرد و کوچک مگیر اگر سیاوش به ایران بازگردد سرزمین ما ویران خواهد شد اگر بیگانه ای به تو نزدیک شده راز کم و بیش تو را بداند و بار دیگر بیگانگی کند دشمنی آگاه خواهد بود بر این زخم نمک مپاش جلوی آبی که از خانه بیرون روت را سخت میتوان گرفت پند مرا بپذیر، ندیدی کسی که پلنگ می پرورد پاداشی جز درد و رنج نمی آبه؟ بدو گفت گرسیب از ای شهریا، مگیرین چنین کار پرمای خواهر از در گرو سوی ایران شود بر بوم ما پاک بیران هر هرانگه که بیگانه شد خیش تو، بدانس راز کمه بیش تو تو جویی دگر زود و بیگانگی کنی رهنمونی به دیوانگی یکی دشمنی باشدن دوخته نمک را مپرکن تو برسوخته بر این داستان زد یکی رهنمون که آبی که از خانه آید برون ندانند درمانان را به بند اگر بد نخواهی تو بنیوش پند نبینی که پروردگار پلنگ نبیند از پرورد جز درد و جنگ افراسیاب به دام گرسیوز افتاده است از کرده خود آشتی کردن و آوردن سیاوش به توران پشیمان شده است به برادر میگوید بگذار زار صبر و درنگ کنیم که شتاب پشیمانی به بار میآورم. بگذار او را به نزد خود و فرا بخوانم من خود میتوانم به سادگی او را نگهبان باشم آنگاه اگر به خیال بدی او پی بردم پاداش بدی او را با بدی خواهم داد چون افراس یا وان سخون همه گفت گرسی و از آمد درست پشیمان شد از رای و کردار خیش همی تیره دانست بازار خیش چون این داد پاسخ منز این سخون سرنیک بینم بلا را برود بباشین تا رازی گردم سپه چگونه گشاید بدین کار چه به هر کار بهتر درنگ از من بمان تا بتابند بر این آفتاب ببینم که رای جهاندار چیست روخش هم چرخ روان سوی کیست اگر سوی درگاه خانم باز، بجویم سخن تا چه دارد براست نگهبان اون من بس هم میگمان همین بنگرم تا چه گردد سمان چسو کشی آشکارا شود که ناچار دل بیمدارا شود از آن پس نکوهش نیاید کس مکافات بد جز بدی نیست بس؟ گرسیوست نامرد و افراسیاب می گوید اگر سیاوش با آن فرر و که من دیدم به نست تو اینجا آید روزگارت تیره خواهد شد سیاوش آن سیاوشی که دیده این نیست فرنگیست دخترت را هم اگر ببینی نخواهی شناخت چنان رفتار میکند کند که گویی در جهان بی شده است اگر سیاوش با آن چهره و آن شکوه به اینجا آید سپاهیانت او را پادشاه توران تو را. آیا دیده ای پیل و شیر آب و آتش یک جا کنار هم قرار گیرند؟ نمیدانی اگر بچه شیر را در حریر هم بزرگ کنی سرانجام به گوهر خود خواهد کشید و چون بزرگ شد از پیل بزرگ هم نخواهد ترسید؟ این گفت گرسی و کینه چون ای شاه بینا دل راست سیاوش بدان آلت و فر و برز بدان ایزدی شاخ و آنتیق و گرس گراید به درگاه تو با سپاه شود بر تو بر تیغه خورشید و ما سیاوش است کشتی شاه همی زاسمان برگزارد کلا فریگیس را هم ندانی تو باز که گویی شدست از جهان بی نیاز سپاهت دو باز گردد همه تو باشی رمه گر دمه دیگر کس شهر آباد اوی چنان بوم فرخند بنیاد اوی تو خانی که ای در مرا بنده باش به خاری به مهر من آگنده باش ندید از کس جوف با پیر چی نه آتش دمان از بر آب زیر اگر بچه شیر ناخورد شیر بپوشد کسی در میانه هری به گوهر شود باز چون شد بزرگ نترسد ز آهنگ پیل ستون افراسیاب از خشم و تردی لبریز شده است گرسیوز وز بدنهاد گاه و بیگاه و پی در پی در گوش افراسیاب از بدی و نافرمانی سیاوش میخواند و هزار رنگ و نیرنگ به کار تا دست افراسیاب را به خون سیاوش رنگین کند افراسی آبروزی گرسی و از را فرا خانده. به او میگوید به نزد سیاوش رو زیادان جان نمان به او بگو همراه با فرنگیس به دیدار من آیند که دلتنگ آنها هستم به او بگو بر دشتها و ما نیز شکار فراوان هست و بر جام های زبرجد مانیز شراب شی. یک چند نزد ما باش و چون دلتنگ شهر خود شدی بازگرد به او بگو مگر با من میخوردن حرام شده برفتند پیچان و لب پرسخون پر از که دل از روزگار کهن بر شاه رفتی زمان تا زمان بدندیش گرسی و زبت زهرگون رنگ اندرام ایختی دل شاه توران برانگیختی ایختی چونین تا بر بر این روزگار پر از درد و کین شد دل شهریار سفه بد چنین دید یک روز رای که پردخت ماند بیگانه جای به گرسی و از این داستان برگشاد ز کار سیاوش همی کرد یاد تو را گفت اصلی در باید شدن برای او فراوان نباید بودن به پرسی و گویی کسان جشگاه نخواهی همی کرد کس را نگاه به هستی همانا نجم بیز جای یکی با فریگیز خیزی را. نیاز است ما را به دیدار تو دانپر هنر جان بیدار تو. بر این کوه ما نیز نخجیر هست به جام زبرجت می شیر هست گرازیم یه چندو باشیم شاد چون آید از آن شهر آباد یاد رامش به باشو به شادی خرام میو و جام با من چرا شد تراق دیمسان گرسی و بدنهاد به سوی سیاوش گرد به راه این خفاش و شبکور نفریم زده است که به سوی آشیان سیاوش و پرنگیز بال